بسم الله الرحمن الرحیم کانا و اخواتوها بله الامثله امثله یه بحث کانا و اخواتوها از شدید. شدیدون میگه ازدهام شدیده البیتو نظیفون ولی خب این امثله رو باید برای فهم خیلی خوب طراحی کرده یعنی یک شماره یک رو نگاه کنی روبروش رو هم نگاه کن. ببینیم جمله اول جمله رو بدون کان آورده از همو شدیدون بعدش از همو شدیدون ترکیبش میشه شه اینو خوندیم از همو مبتدا مرفو با ذمه شدیدون خبر مرفو با حالا کان رو رو همین جمله آورده کان از همو شدیدن ببین چی تغییراتی اومد کان که اومد مبتدا که مبتدا بود از همو مرفوع موند ولی خبر دیگه الان منسوبه الان بهش مبتدا و خبر هم دیگه نمیگن به مبتدا میگن اسم کانه به خبر میگن خبر کانه نمیگن خبر مبتدا میگن خبر کانه پس این ترکیبش چونینه البه تو نظیفون البه مبتدا مرفو با ضمه نظیفون خبرش مرفوب با ضمه کانه افعال ناقصه فیل ناقصه کانه فیل ناقصه هست با اینا ناقصه. نه اینا حرف نیستند اینا فیلند بشون افعال ناقصه یا کانه و اخواتش افعال ناقصه بشون میگن خب کان البیت و میگیم کانه خب فعل دیگه فعل که هستن چرا بشون میگن افعال کان البیت و نظیفن کان البیت کانه فعل ناقصه بیت اسمش مرفوع با زمه خبرش است این کانه اخواتش عبارتند از کانه ساره لیسا اصبحه امسا ابحا ظلا باته اینا رو فقط تو این کتاب آورده و برای هر از اینا مثال آورده به خاطر این مثال 16 تا شدند یعنی 8 تا آورده برای هر یک دو مثال آورده از افعال ناقص هشتار آورده و برای هر یکی چند تا مثال آورده تو این درس برای هر یکی دو تا مثال آورده این فعلا مزارشون مثل مازیشونه یه نمانطور که مازی اسم مرفو داره و خبر منصوب مزارشونه ولی لیسه دیگه مزاره نداریم ما دیگه لیسه یا لیسو نداریم ولی کانه یکونو داریم ساره یا سیرو داریم اصبحا يصبحو داریم امسا يمسی داریم اضحا يضحی داریم ظل یا ظل بات یبیتو اتوجه شدی؟ خب نه نه نه مبتده مبتدا جش مرفو میمونه چون خبر اینا مرفو هست البته اگر به معنی ها دقیق کنیم معناها ها متفاوتن مثلا کانه کانه موقعی که رو جمله بیاد اسمش متصف به خبر میشه موقعی که بگیم کانه البیتو نظیفن یعنی بیت متصفه به چی میشه؟ به نظافت میشه ولی در ماضی ولی در چی؟ مازی. ساره دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که مبتدا از حالتی به حالت دیگر گشت مثلا میگیم سارا اثوب قصیرن معنیش اینجوری میشه لباس کوتاه گشت یعنی قبلا حالتش این نبوده سارا زید آلمن زید عالم گشت یعنی قبلا عالم پس ساره تغییر مبتدا از حالی به حال دیگر لیسا که نفی میکنه اصبح و امسا و اضحا و ظله و باتا اینا دیگه دلالت بر وقت میکنن دلالت بر و... بر چی میکنن اصبح صبح امسا مسائب اضحا وقت دوهاست به همین شکل باتا باية. باتا به معنی شب شب شب خابش. شب بیتوته همون شبو میگه. بله خب بیا توی بحث امثل رو میخونیم ترکیب میکنیم به خاطر که سودش بیشتره الخادم قوی، مبتدا خبر لیسه الخادم قویان ليس از اخوات کانه الخادم اسمش مرفوب با زنبه قویان خبرش منصوب با فتحه العاملو نشیطن، العاملو مبتدا، نشیطن العاملو مبتدا نشیتون خبر ليس از خوات کانه، یا بگیم بهتر، بگیم فیل ناقص فرق نمی کنه، العاملو اسمش مرفو بازمه، نشیتن خبرش منصوب با فتحه، این معنیشو بدون چون اون بقیه ساده بودن، انهم یعنی پرخور، یعنی شکمپرست، نهم مریض است، مبتدا مرفو بازمه، مریزون خبرش است، اصبح نه... نهمو مریزن، اصبح از اخوات کانه النهیم اسمش مرفوع با زمه بریزن خبرش منصوب با فتحه الجو ممترون مبتدا ممطرن خبرش اسبحه الجو ممترن اسبحه از اخوات کانه الجو اسمش مرفوع با زمه ممطرن خبرش منصوب با فتحه العامل متعبن کارگر خصه است مبتدا متعبن خبرش امس العامل متعبن متعبن کارگر بیگاه خسته گشت. کارگر به وقت مسا گشت؟ یا کارگر بیگاه کرد؟ خ... با, با خستگی. خب، امسا العاملو متعبن امسا از اخوات کانه العاملو اسمش متعبنم خبرش از زهرو زابلون زابلین پشمرده از زهرو مبتدا زابل خبر امسال زهرو و زابلن ترکیب قبلی رو داره الغمامو کثیفون و و خبر ابه الغمامو کثیفن این عضو از اخوات کانه است الغمامو اسمش هست کثیفن هم خبرش الشارع و مزدحمون ابه الشارع و مزدحمن, مزدحمن. ترکیب چنین هست المطر تمام این ترکیبایی که تا اینجا آوردین همشون اینجوری هستند غمام یعنی ابر بله در قرآن هم اومده این شد از بحث قواعدو بخونیم تدخل کانه علی المبتدئی و خبر میگه کانه وارد میشه بر مبتدا و خبر فترفع الاول و یسمه اسمها اولی رو مرفوع میکنه یعنی مبتداره کدوم میکنه؟ کرده مبتداره و یسمه اسمها و مبتدا نامیده میشه اسم کانه یا یعنی اسم اخوات کانه دیگه دیگه, دیگه مبتدا نمیگند و تنصبو اثانیه و منصوب میکند دوومی را و یسمه خبرها و دومی خبرش نامیده میشه دومی چیش نامیده میشه؟ خبرش دیگه بهش نمیگند خبر خبر مطلق چون اگه بگیم خبر یعنی خبر مبتدا بلکه میگیم خبر کانه یا خبر اخواتش و م... مثل کانه فیما تقدمه ساره و لیسه و اصبح و امسه و اضحه و ظله و باته و تسمه هذه الافعالو اخوات کانه مانند کانه در انچه که مثال هش رد شد یا مانند کانه هست ببین مثل کانه فی ما تقدمه به مانند کانه هست در انچه که گفتیم یعنی در این که مبتدارو مرفو میکنه به عنوان اسمش و خبرو منصوب میکنه به عنوان خبرش بمانند کانه هست. چی چیزایی بمانند کانه هست؟ ساره لیسا، اسبحه امسا، ادحا ظله باته پس مثل کانه فی ما تقدم بمانند کانه هست در چه که گفتیم رد شد چه چی چیزی بمانند کانه هست؟ ساره و لیسا و اسبحه و امسا و ادحا و ظله و باته و تسمه هذه الافعالو اخوات کان و أفعال أخواتك اخوات کان نامیده میشوند أفعال افعال چی نامیده لكل فعل من هذه الأفعال مضارع و يعملان عمل الماضي هر یک از این فعلای که اینجا نام بر دین مضارع دارند و امر دارند و عمل فعل ماضی رو انجام میدن یعنی اسم دارند و خبر اسم دارند و چی و اسم مرفوع میکنن و خبر رو منصوب الا ليس جز ليس فلا یعطی منها مضارع ولا امرون که لیسه مزارع و امر ندارد پس ما رو خونده بودیم جمله بردون اسمه اسمیه و فعلیه جمله اسمیه شامل مبتدا و خبر بود الان خوندیم که کانه و اخواتش روی جمله اسمیه میاند مبتدا رو به عنوان اسمشون مرفو میکنند و خبر رو به عنوان خبرشون منصوب اینا جز در کتابه دیگه نواسخ هم میگند نواسخ مبتدا و خبر یعنی اون حکم مبتدا و خبر ودن رو نسخ میکنند در واقع به این جهت بشون گفتن. تغییراتی روشون میارند مثلا کانه چی تغییری میآورد خبر رو چکار میکرد منصول میکرد حالا یکی دیگر از اونها ان و اخواتی ها که الان میخونیم الجمل و صبورون شطور صبر کننده است إن الجمل اینجا چه تغییری شما میبینی در این جمله ان رو شومده مبتدا رو منصوب کرده و خبر و همون جوری سر جاش مرف پس إن برعکس کانوا خواتش هست إن وا خواتش اونا اسم رو مرفو میکردن و خبر رو منصوب اینا برعکس اسم رو منصوب میکنن و خبر را مرفوع إن الجمل الهرم قديم إن الهرم قديم الهرم مدوني دكتشيه هرمهمون هاي حسن كي يكأس فرعونية مصر درس شون كردي آره جمش أهرام مصر آره بعدي الهرم قديم الهرم قديم يست إن الهرم قديم إن حرف مشابهة ين ين حروفات ينات يانت فعل نيسان میگیم ان نه حرف مشبهه الهرما اسمش منصوب با فتحه قدیمون خبرش مرفوع با ظمه الامتحانو قریب الامتحانا است الامتو ان الامتحانا قریبون ببین ان نه با ان یک سری فرقای دارن که در کتاب بعدی نحو الواضح میگه این ان نه در وسط که بیاد فتحه میگیره وجهای دیگه که اونجا چندین جایی که اونا رو مفصل در کتاب دیگه ذکر میکنه. اخه اینه با ان لازم معنای هیچ فرقی نداره. این که چه جایی بشت زن فتح بدیم و چه جایی کسره. اینو در کتاب بعدی خودش مفصل میگه که ما چه جا اینه رو به کار ببریم و چه جاییی؟ بله. اینجا علم تو ان امتحان قریبون به خاطر که در ابتدا نیومده. در ابتدا پس دانستم که همان امتحان نزدیک است ترکه انا میگیم حرف مشبهه یا از اخوات الا الامتحان اسمش قریبون خبرش این که میخوایم ترکیب کنیم المتو میگیم فعل با فاعلش ان الامتحان قریبون این جمله به شکل کلیه تکی که من برات ترکیب کردم ولی به شکل کلی اون موقع میگیم مفعول بهی هست این جمله محلل منصوب نقش جمله رو میخوایم بخوایم تا کنیم قریبان کلش نه دیگه اسم اینه هست اسم مفعول نیست خودش یه نقشه خودش یه اعرابه اعراب جمله ها محلی بر چی چیزی رو دانستم دانستم که امتحان نزدیکه اونی که دانستم بهش میگن مفعول بهی ولی خب شما نخوندی علیکی گیجت نکنیم هر چیزی رو سر وقت خودش و هر کتابی رو به ساعت خودش انسان هر جمله‌ای رو باد بگیم از زهرتون نعاضیره تون قول شادابه یسر ان این زهرت نعاضیره تون این همون تارکی بداره کتاب استاد کتاب استاد است و ابتداو خبر که الكتاب کتاب استاد گویا. کتاب افتاد است که ان از خواات ان نه کتاب اسمش منصوب باافته استول خبرش منصوب با زنمه القمر صبحاحون که ان القمر الق صبحون همون ترکیب بداره اسافو قدیمون البيت و جدیدون لاکن نه اف قدیمون میگییم مبتدا جدیدون خبر لاکن نه از خواات ان افافر اسمش منصوب باافته قدیمون خبرش مرووب با زنمه. الخسائر قليلة شبت النار لكن الخسائر قليلة شبت النار شبت فيل ماضي موناس حس النار فاعلش حس لكن از اخوات انها الخسائر اسم لكنها من سبفتها قليلة خبر حس الفاكهة ناضجة فاکهتو نادو جتون میوه تازه پخته هست. تازه هست پخته هست. لیت الفاکهتو نادو کاش میوه رسیده بود. خب. لیتا میگیم از اخوات اینه هست الفاکهت اسمش هست و نادو خبرش هست مرفو بازمه. إن بإن راهاتي هست القمر طالع لیت القمر طالع ترکیبش دقیقا هم مثلمون همون هست الکتابو رخیصون لعل الكتاب رخيص المریض نائمون لعل المریض نائمون همه اینا بله. در این لغاتی که اینجا اومده بودند تمامشون ساده بودند جز شبه بله. شبت النار یعنی آتش سوزی روخ داد شبت نارو یعنی چی؟ آتش سوزی روخ داد ولی خسارت و زیان چی بود؟ کم بود دیگه بقیه کلمات حرمو که گفتیم این رخیص و اینا که دیگه خیلی ساده هستند بیا روی قاعده ان و ان و که ان نه و لاکن نه على یت والخبر. الله تدخلو مبتد ای والخبری. ان و ان که ان لاکن نلهیتولله اینها داخل برچی بر مبتدا و خبر. مثل کاننا وخوااهش. فتان سبل مبتها منصوب میکنند مبتدا و یسم اسمها و این مبتدا دیگر اسم اینها نامیدیده میشه. واتار فع ال خبرها و یوسم ما و خبر روچکار می کنندند. خبر را مرفو میکنند و خبر دیگه چیش نمیده میشه؟ خبرش نمیده. بشه بش میگن خبر این نه یا خبر اخوات این نه. اینجا هم تمرین و خدا را شکر. الحمدلله خدا شوار جزای خیر بده اینی شبه حلشون ممکنی باقی زحمت میکشیم. بله، بله. بله. اینا رو الهاز معنایی که چه کار برده هایی دارند خوب شد که گفتی نه و انه برای تأکیده ثبوت خبر برای مبتدا مثلا موقعی که ما بگیم زیدون اگر اگه بخواییم تأکید کنیم که واقعا زید آلمه یعنی این خبر برای این مبتداه ای نه و کار بکنیم بگیم بگیم اینه زیدن به تأکید که زید چه هست پس نه و انه تأکید الثبوت خبر برای مبتدا رو که کعنه برای تشبیه ب... تشبیه مبتدا به خبر. تو موقعی که مبتدار رو تشبیه به خبر بکنی، ها؟ مانند مثالی که آورده بود. مثلاً در امثله موقعی که بیای، برای کعنم مثال آورده، یا نه؟ بله. کأن الكتاب أستاذ. اینجا کتاب که مبتدا، الكتاب و استاذ مبتدا خبره. موقعی که مبتدار و تشبیه به خبر کنه یعنی بگه کتاب مانند استاده کعنه از کعنه استفاده میشه میگه کعنه استاد استاده گویا که کتاب چه هست پس کعنه برای چی کار برداره برای تشبیه کردن مبتدار به خبر مثلا شما میخوایید زید و تشبیه به شیر بکنی میگه کعنه زیدن اصد گویا که زید چه هست اصاد هست، چیر هست؟ لیکن برای چی بکار میره؟ لیکن نه برای استدراک بکار میره استدراک دیگه چیه؟ یعنی شما یه حرفی رو میزنی از این حرف شنونده ممکنه یه چیزی رو برداشت بکنه برای این که اون برداشت اشتباه رو نکنه لیکن رو میاری و شبه رو برطرف میکنه پس لا که برای استدراک میاد و استدراک چی است؟ من کردن شنونده از فهم چیزی که مقصود گوینده نیست بیا روی خود امثله مثلا در امثله اومده ما میگیم البیتو جدیدن موقعی که ما میگیم البیتو جدیدن طرف فکر میکنه که پس با تمام چیزا این خونه چیه جدیده ولی بعدن میاد استدراک میکنه میگه ولی وسائل کانه میگه البیتو جدیدول لاکن الاثاس قدیم اما اساسات و وسائل چیان اینو میگن استدراک اینو میگن چی استدراک لیتبره چی کار میده بر تمنا کردن حاصل شدن خبر بکار کار میده مثلا بله میگه لیتل واقعته نابجت ابتدا میگه الفاکه تو نابجتون این مبتدا خبره اونجا خبر میده میگه میوه رسیده بعدا میگه لیت الفاکه تو نابجتون اینجا داره تمنای خبر رو برای مبتدا میکنه میگه ای کاش که میوه رسیده بود پس لیتا برای تمنای حاصل شدن خبر تمنای حاصل شدن چی؟ خبر. و لعله دلالت بر امید واقع شدن اون کار میکنه لعله برای دلالت بر امید مثلا در امثله دقت بفرما الکتاب رخیصون لعله الکتاب رخیصون امید است که کتاب چی باشه؟ ارزان باشه حالا فرق لیتبا لعله چیست؟ لیتا گفتیم برای تمنا بکار میره و لعله برای رجا و امید تمنی عادتا برای یک امری تمنی رو میکنند که به دست آوردنش سخت باشه یا مم غیر ممکن باشه بسید میگه کاش جوانی برگشت پس تمنا برای امری که حاصل کردنش خیلی سخته یا محاله ولی امید نه امید برای اموری که محقق شدنشون نزدیک بحل. این شد از کاربرد اینها و اما آخرین درس از اینا که خیلی ساده هست جر اسم الاسم اینا رو شما در نحو میر خوندی ولی بیش از اینا رو البته خوندی نزل المطر من السماء دقیق بفروا در امثل السمکو من البحر، برأي من دو سعى الجيش إلى الميدان، صارت الماشية إلى الحقل، ينزل الجندي أن الحصان، حصان يعني؟ قال أي؟ يطفو الخشب على الماء بالاميرة شو براب؟ يذهب الخوف أن الطفل يسقط الثمر على الأرض، ينبح الكلب في البستان. ساق در باق صدا صدا میکنه او او میکنه قشرت الفاكهه بالسكن فوسدم میوه و چاقو دخل المجرم في السجن يتقاتل الجلود بالسيوف الجائزه للسابق اشتريت قفلا للخزانه خب. اینجا اگر دقت داشته باشی چند حرف جر آورد دو تا برای من مثال آورد دو تا برای اله دو تا برای عن دو تا برای علا دو تا برای فی دو تا برای ب و دو تا برای لام چارده تا مثالن، هفت تا حرف جر حروف جر بیشترن، شما توی نهز میره تا خوندی فکر کنم تو ذهنم من دیگه باله خوب هر یکی از اینا معنای خاص خود داره که اگر در خود جمله ها هم دقت کنی معمولا معناها دیگه چی هست روشن میشه ولی چیزی که در این درس آورده بحث اینه که بعد از کلماتی که بعد از این حروف آوردن میبینی که مجرور شدن مثلا نزل المطر من السماء سع الجیشو الی المیدانی ینزل الجندیو ان الحصانی ينبح بحل في فلبستانی الجائزتو لسابقی همه چی شدند؟ مجروم شدند چی چیزی اینا رو مجرور کرده موقعی که نگاه کنیم؟ همین حروف جر پس ایمه اینا میگن حروف جر به خاطر این که اسم بعد از خود خودشون رو چکار میکنند؟ مجرور میکنند اینا روی فعلا نمیاند إذا روية فعلها نميان فقط روية اسمها ميان يجر الاسم إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية مجرور ميش اسم زماني كه قبل زون حرفي أز حروف الجر قبل بي حروف الجر زير بي آيات وهي يا حروف الجر آتي آتي يعني آيان ده إنون شك ميات وهي من وإلا وعن وعلى وفي والباء ولا وإبرة أز إن حروف أز من وإلا وعن على في الباء ولا كحريك أزيناء البت معناه يداري كدر كتابهاي بعلاقه معاني معاني يدار مجن مثلا من ابتدارو ميرسونه من زاهدان إلى طهران إن باهم باي استعانة ميتوه باشه باي سبب يي ميتوه باشه إن عنهم بمعنی از هست فیک هم ظرفی هست یعنی در و لام هم میتونه لام ملکیت و لام های دیگه باشه الجائزه سابق جائزه برای اونی هست که از همه سرقت گرفت پس در بحث حروف جر اینو ما بدونیم که حروف رو حفظ داشته باشیم و بدونیم که حروف جر فقط اسمها مجرور میشن، فعل ها مجرور نمیشند همانطور که فعل ها مجرور نمیشن و مجزوم میشن، فعل ها مجرور نمیشند اینا هم تمرنات چونه انشاءالله به الله حل کن فقط یک درس از نحوالواضح مونده که میریم جز دوم این درس هم خیلی ساده هست اینو مفصل الان برایت بازی میکنم الله النعت نعت غیانی یعنی همون صفت هادا کتابون مفیدون میگیم هادا مبتدا شما اینا رو هلوز نخوندی من زیاد توضیح تا تاگیز نشین ببین در هادا ها حرف تنبیه ذا اسم اشاره ذا مبتدا هست جان؟ آره اسم اشاره ولی دیگه این اعرابش مبنی هست اعرابش محلیه میگیم هذا ذا، اسم اشاره، مبتدا محلن مرفوع، دیگه زمه نمیگیره کتابون خبرش مرفوع با زمه، مفیدون صفت کتابه، نعت کتابه نعت چیه؟ بله، پس چون کتاب مرفوعه، مفیدون مرفوعه ببین، اگر کتاب منصوب میشد، مفید هم منصوب میشد نعت جز توابه، اینا رو شما بعدن مفصل میخونید یعنی خودش اعراب مستقلی نداره منعود اونی که وصف شده اگه مرفو باشه نعت مرفوعه. اگر منعود منصوب باشه نعت منصوبه اگر منعود مدرور باشه نعتیه خودش تو این مثال آورده حالا تو مثال دوم و سوم اینو دقیقا توضیح داده قرعتو کتابن مفیدن قرعتو فعل با فائل کتابن مفعول بهی منصوب مفیدن نعت کتابن هست چون کتابن منصوبه پس مفیدن هم منصوبه. نظرت في كتاب مفيد نظرت في البفائل في حرف جر كي الان خونديد كتاب مجرور بحرف الجر جر مفيد هم نعت الكتاب چون كتاب مجرور مفيد هم مجرور هست هذا ميدان فسيح تركيب قبلي رو داره رايت ميدانا فسيحا ترکیب قبلي رو داره جرت في ميدان مسيح فسيح جريت ويني داويدم فسيح يعني تفتحت الورده الجميلة شکوفته شد شکوفه زیبا قطفت الوردة الجمیله چیدم شکوفه ی زیبارا نظرت به الوردة الجمیله نگاه کردم به شکوفه زیبا تو مثال آخری اگر دقت بفرمایی یک دقتی رو بفرما ببین زمانی ما که ما بیاییم در امثله ای که آورده بود دقت کنیم میبینیم که میبینیم که نعت در سه چیز در رفع و نصب و جر تابع چه هست؟ منعوتش هست اون مرفوعه این هم چیه؟ اون منصوبه این هم منصوبه اون مجروره این هم؟ مجروره اگر یک دقت دیگه هم بفرمایی اینو هم متوجه میشی کتابون نکره هست مفیدون هم چه هست؟ نکره هست کلاً هر شیش مثال میدانون فسیحون میدان فسیحن اما اگر سه مثال بعدی رو دقت کنی الوردتو الجمیله این الف داره اون هم داره یعنی این معرفه اون هم هست تفتحت الوردتو الجمیله قطفت الوردتو الجمیله نظرت الى الوردتو الجمیله پس زمانی که این تامل رو داشته باشیم در رفع و نصب و جر و در نکره و معرفه بودن این چی است؟ تابعش است. القاعده قواعدو بیاین بخونیم ان نعت لفظ يدل على صفه في اسم قبله. نعت لفظی است دلالت بر صفتی در اسم قبلیش میکنه دلالت بر صفتی در اسم قبلیش. مانند ده کتاب مفید. مفیدن لفظی دلالت بر صفتی میکنه که این صفت در اسم قبلیش اسم قبلی کتابه اسم قبلی چیه بله ویسمل اسم الموصوف منوعتا به اون اسمی که نعت شده بش میگن چی منعوت یعنی نعت شده اسم مفوله اما قاعده 24 و آخرین قاعده از جلد یک نحو الواضح ابتدایی ان النعت یتبع المنعوت في رفعه و نصب و جر نعت تابع منعوت هست در رفع و نصب و جر خیلی ابتدایی توضیح داره. وگرنه ما دو نوع نعت داریم. بعدش. هر که از این دو نعت در چیزای خاصی باید از چی پیروی بکنه؟ از. تنها در بحث ایراد نیست. در بحث مزکر موننس داریم. و در بحث نکره و معرفه بودن رو داریم. که اینا چون دلو اند بازی ها بله ولی اینا رو دیگه اینجا مطرح نمی کنیم بخاطر که شما در این سطح یک بار خود نعتو بزن پله پله پل نفتیه پله پله پل. تا اینجا کار ای تمریناتو به ازن الله حل کن الله از شنبه جزء بعدی رو شروع خواهیم کرد موفق و پیروز باش